در سوره بلد هم همون موضوع تذیه من الدنيا است اما در سوره فجر شما مزمت محبت دنیا را خاندید در سوره بلد خدای تعالی بعضی از مصارف را معرفی می کند که محبت از دلت وقتی خارج بشه شما مال را مصرف میکنی کجا مصرفش کن و برای چه مواردی مصرفش کن الله تعالی ابتدان اینجا هم سوگند یاد میکند این تخویف الدنیوی هم هست برای مشرکین مکه چون سوره مکی هست لا اقسم به هادا البلد و ان تحلن به هادا البلد لا لا تاکید هست سوگند میخورن به این شهر شهر مکه شهر مقدسی هست مکه گرچه از نظر ظاهر وادی لم یزرع هست ولی مکه در واقع شهری هست که الله عز و جل را شهر الله الحرام قرار داده شهری هست که آدم علیه صلات و السلام ابتداءن خانه کعبه، را بیت الله المکرم را اونجا بنا کرد و بعد از آدم علی الصلاۃ در طول تاریخ وقتی که بیت الله از بین رفت یا با طوفان نو حضرت ابراهیم خلیل الله مجددا بیت الله را برای بار دوم بنا کرد شهری که شهر, شهر اسماعیل ذبیح الله شهر محمد رسول الله صلی الله علیه و هست به این خاطر این شهر قدمت دارد قدمت دینی قدمت تاریخی به این خاطر الله به این شهر سوگند یاد می کند لا اقسم به هایز البلد سوگند به این شهر و ان تحلم به هایز البلد مفهوم و ان تحلم به هایز البلد را صورت متفاوت و گوناگون نوشتن شما در این شهر فرود میآید یعنی چه؟ یعنی یک روز فاتحانه وارد این شهر میشه مفهوم صحیح تر اینه بعضی گفتند حل چون که مکه حرم هست یک ساعتی برای رسول الله صلی الله علیه و حلال قرار داده شده که رسول الله میتونه دشمنانش از پای در بیاره اون استثناء مال رسول الله هست اما اینجا اشاره به غلبه رسول الله بر مکه هست که شما غلبه میکنید شما فرود میایید در این شهر و این شهر مال شما میشه این شهر را شما تصرف میکنید امروز مظلوم هستید چون سوره سوره مکی هست و از سوره های اوائل مکی سوره است. اون زمان مسلمانان مظلوم بودن جایی نداشتن. ولی یک روز شما این شهر رفت میکنید. و والد و ما ولد. و همچنین والد پدر شاهد هست و ما ولد و فرزند هم شاهد هست. پدر و فرزند به چه معنی؟ بعضی میگه آدم و فرزندان آدم همه شاهد استند والد مراد آدم هست و ما تمام اولاد آدم بعضی گفتند والد منظور مادر است که بچه را می زاید که با چه مشقتی بچه را به دنیا می آورد و همچنین خود بچه الله می فرماید همه اینها شاهد استند ما انسان را آفریدیم در مشقت مشقت یعنی چه؟ یعنی انسان زندگی دنیایش هم با مشقت هست فیکبد یعنی مشقت یکابد و مسائب و شدائد الاخره آخرتش هم همیش مشقته یعنی دنیا و آخرت همیش مصیبته انسانی که در مسیر حق نباشد در دنیا هم برایش عذاب است در آخرت هم برایش عذاب است. مگر انسانی که فرمولهایی که در آینده بیان میشه به بی اونها عامل و پایب باشه. لذا الله می فرماید آیا حسب وقدر را احد؟ آیا انسان میپندارد فکر میکند کہ که لن یقدر علیه احد برو هیچ کسی قادر نیست؟ هیچ کسی توانایی بر او ندارد ماخزش نمی چرا؟ الله تعالی وقتی که بخواد مواخذه بکنه، همه چیز رازش میگیره، مال را میگیره، جان را میگیره، یقولو اهلک تو مال اللوبدا، میگوید من مال زیادی مصرف کردم، از بین بردم، ایحسبو علم یرهو احد، آیا این انسان میپندارد که او را کسی نمیبیند؟ این انسان چه؟ نعمت های خدا بیش داده، این نعمت ها را توجه نمی کند، علم نجعل له عینین، آیا ما قرار ندادیم برای انسان دو تا چشم؟ هر یکی به این اعضایی که خدا به ما داده و نام میبرد، فکر میکنیم سبحان الله. چقدر این نعمت ارزشمندند، این چشم چقدر عرضش منده، خدای نکند. این چشم از کشی گرفته بشه، انسان دنیای سیاه میشه، دنیای تار میشه. علم نجحل له عینین و لسان و شفتین، آیا برای او دو چشم ما قرار ندادیم و زبان قرار ندادیم و دو تا لب هم زبان و هم لبها اینها باعث تکلم میشه این صحبت کردن من و شما بزرگترین از کنم نعمت پروردگار هست که الله تعالی به من و شما قوت نطق داده هرچی که تو دل من هست میتونیم بیان بکنیم اما حیوانات که از ما خیلی قوی هستند اونا این نعمت را ندارن ارز می کنم همیشه که گاهی حیوان درد میکشد، گاهی درد میکشد، گاهی در رنج هست ولی صاحبش پریشانه نمیدونه که این دردش از چه ناحیه‌ای هست است زبانی نداره حیوان که بگه من چیم هست. اما بچه کوچی که درد میکشد شما میگه بابا چت شده دست به گوش میبرگه گوش هم درد میکنه. مشخص فورا درمانش میکنه. همین بچه تا زمانی که به حرف نمیاد چقدر انسان با اذیت بلخصوص وقتی مریضی داشته باشه. لذا انسان را که خدا زبان و شفتین داده راحت معافظ ضمیر خودش را اونچهی که در دلش هست. ون ربايان میکند لم نجعل له عينا و لسانا و شفتين و هذيناه النجدين و ما ارد راه راهنمایی قدیم نجد بہت بلندیرا در واقع انها دو تا راه هستند یکی راه هدایت هست یکی راه ظلالت هست یکی راه ایمان هست یکی راه کفر است. دو راه به انسان نشان دادیم فلقت حمل عقبه الله می انسان چرا مشق فلا بمانه چرا تحمل نکرد عقبه را عقبه از نظر لغت به بمانه گردنه هست راه کوهستانی را میگه عقبه چرا گردنه را تحمل نکرد اما مراد از گردنه اینجا یک چیز خاص است. یه چیزی که برای شما مثل همون گردنه مشکل است. و ما ادراکم العقبه خبرداری عقبه چیه؟ صرف کردن مال است. مال دادن سخته مالی که برایش عرق ریختی برایش بیل و کلنگ زدی برایش شبیداری تحمل کردی برایش بد و بیراه شنیدی اما این مال را مفت به کسی بدی سخته لذا الله می فرماید که چرا تحمل نکرد, تحمل نکرد گردن را گردن چیه و ما ادراک ملاقبه فکر رقبت ارز کردم در این سوره مصارف بیان میشه الان مصارف اینجا ما از طرف کن مالت را فکر رقبت گردنی را آزاد کن در, در گزشته غلام بودند برده ها بودند پول بده غلام بره بدلش را بده بدل کتابتش را قیمتش را تا آزاد بشه امروز زندانی هستند دهان زندانی اسیر هست به خاطر یک دیه غیر عمد به خاطر یک تصادف به خاطر یک اشتباهی که قصد نکرده به خاطر میلیون تومان به خاطر 100 میلیون تومان به خاطر 500 میلیون تومان سال است تو زندان افتاده زن بچه‌ش اینجا زنجیر می‌کشه پولی نیست که دیا بده خودش را آزاد کنه جریمهش را بده خودش را آزاد بکنه لذا الله می‌فرماید فک رقبه آزاد کردن گردن اینه که انسان آزاد می‌کنه واقعاً برای انسان سخت این همه پول یک جا بده اما این تهی کردن و پیمودن همون گردنه است از اون گردنه که رد بشی بشا به بهشت میری او ایتام فی یوم ذی یا تعام دادن در روزی گرسنگی در روزی که گرسنگی هست مردم گرسنه هستند بعضی وقتها ما غذا میدیم و فراوانی است ما همه مردم تجارتشون درآمدشون خوبه بازار رونقش خوبه مال زیاده این هم خوبه اما کمال اینه که وقتی که قحط است وقتی که چیزی نیست مردم هیچ گیرشون نمیاد مردم گرسنه هستن در اون شرایط به مردم ای برای مردم پهن بکنی برای مردم سفره افتار بندازی برای مردم افتاری و سحری به خونشون برسانی و به مردم طعام و غذا بدی مواد خوراکی بدی این ارزش دارد میگویند زمانی که قهد شد حاتم تایی خیلی جود و سخا کرد یک روز در روز قهد ست تا حیوان را میگن ست تا اسب بودن اسب هم گوشتش خورده میشه اسب خیلی نفیس و ارزشمند بود ست تا عصب کشت گفتن که در این شرایط سخت در این قهد شما ست تا شتر یا ست تا اسب کشتی گفت بله وقتی که مردم همه داشته باشن اون وقت کشتن اینها این, این هنری ای نیست این کمالی ای نیست هنر توفیق نه که در چنین شرایطی که مردم ندارم بکشیم و به مردم بدهیم لذا فی یوم در روزی که گرسنه است یتیما ذا به به اون یتیمی که با تو قرابت و خیشاوندی دارد نه اینکه مال یتیم را انسان بالا بکشه به یتیم از طرف خودش هم چیزی بده یتیم انزا مقربا یتیمی که دارای قرابت هست هر یکی از عزیزان توصیه هست کسانی که دارند کسانی که صدای ما را میشنوا از طریق این فضای مجازی یکی از بزرگترین نیکیها در زندگی اینه که سعی کنید یک یک تیم دو یتیم سه یتیم ده تا یتیم را تحت تکفل خودتون داشته باشید تا روزی که زنده هستید حقوق اون یتیم از مال شما بره هر ما به حسابش بریزید اگر خیشاوند باشه بهتره اگر از نزدیکم باشه هر ماه مثلا ماه پونسات هزار تومن امروز چیزی نیست برای کسانی که کار میکنن تجارت هر ماه وقتی که این به یتیم برسه شما میشید کافل و یتیم شما میشید کسی که سرپرستی یک یتیم هستید و تکفل کردی سرپرستی او را و رسول الله صلی علیه و سلام فرمود انا و کافل الیتیمی کهازین او کما قال علیہ من و کسی که یتیمی را تحت تکفل کرده مثل این دو تا روزی قیامت در کنار هم هستیم لذا به یتیمها برسید رسیدگی بکنید باید فرهنگ نگهداری یتیم در جامع ما بالا بره یتیم‌ها چنان در ناز و نعمت باشند که اون زمانی که پدرشون زنده بود اون زمان این غذا را نداشتن این خوراک را نداشتن این لباس و کفش را نداشتن باید از اون بهتر داشته باشند. لذا الله می فرماید ذا مقربه به یتیمی که اون یتیم دارای قرابت و خیشاوندی هست به اون یتیم برس. او مسکینم ذا مطربه یا به مسکینی که بدحال است، ذا مطربه مطربه تراب را میگم تراب یعنی خاک یعنی مسکینی که خاک دارد یعنی تو خونش بری چی پیدا میکنی؟ گردخواد پیدا میکنی ولی غذا پیدا نمیکنی لذا به اینها برست اینها هستند در واقع پیمودن اون گردنه و رد شدن از راه های سخت اما تنها اینکه انسان صدقه بکند تنها خرج بکند کافی نیست ثم كان من الذين آمنوا سپس خودش باشد از مؤمنین، از اونهایی که ایمان آوردن و تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمة از اونهایی که توصیه میکنند به بالصبر و از اونهایی که توصیه می کند بالترحوم یو به رحم کردن یعنی هم دیگر را همیش توصیه به صبر و استقامت و لطف و مرحمت اینهایی که هم ایمان دارند و هم, هم دردی دارند الله می فرماید اولئیک اصحاب المیمن اینها هستن اصحاب المیمن اینها ای کسانی هستن که نامه اعمالشون بدسته راست هست اصحاب الیمین هستن والذین کفرو بی آیاتنا اما کسانی که کف کنن این تخویف اخروی هستن کسانی که کفر کنن نسبت آیات ما هم اصحاب المشأمة اونها اصحاب شمال هستند کسانی که به بدست چپه علیهم نار مؤصده بر آنان آتشی هست که این آتش مؤصده روز قیامت بر اونها بند میشه بر اونها منحصر میشه